افزان برامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهرافرین و یکتا سلام لحظات خوب و آرومی رو برای شما همراهان ارجمند آرزومندی افسانه ها باتاب ویژه های زندگی مردمن و در ماها میشه سرنوشت و رد پای های میآکان و گذشتگانمون رو دنبال کنند افثانه ایرانی مرغ سعادت رو براتون نقل میکنم برگرفت از کتاب قصه ها و باورها تألیف تعلیف دکتر احمد بیانی روزی روزگاری در زمانهای قدیم زن فریری همراه با دو پسرش زندگی میکرد اونها با خارکنی پسر بزرگتر روزگارشون رو سپری میکردن پسر بزرگتر هر روز پشتهای خار رو به بازار میبرد و میفروخت و از این راه امرار معاش میکردند. روزی پسر دو پشت خار چید. یکی از اونا رو توی صحرا گذاشت و یکی دیگر رو با خودش به بازار برد و فروخت. روز بعد که به سحرا برگشتید، روی پشته خاری که روز قبل گذاشته بود، تخم ای قرار داره. پسر اون رو برداشت و گفت، آه، اینم از غذای امروزه. و بعد به طرف خونه براه افتاد. وقتی به خونه رسید، تخم پرنده رو به مادرش داره گفت، مادرجان، با این تخم مرغ میشه یه نیم روی حسابی درست کنیم و بخوریم. مادر نگاهی به تخم پرنده انداخت و متوجه تفاوت اون با تخم مرغای دیگه شد بنابراین به پسرش گفت پسر جون مگه نمیبینی اینکه تخم مرغ معمولی نیست باید اونو ببرم بفروشم حتما با اون پول خوبی گیرمون میاد و بعد تخم مرغ رو برداشت و به سراغ مرد تاجری رفت که در نزدیکی خونه شون مرد تاجر با دیدن تخم مرغ با تعجب و خوشحالی گفت آه این تخم مرغ از کجا آوردی زنم گفت که پسرش اونو توی صحرا پیدا کرد مرد تاجر به جای تخم مرغ مقدار زیادی پول به زن داده گفت اگه کاری کنی پسرت خود مرغ رو از صحرا بیاره تو رو به همسری میگیرم و تمام دارایی و ثروت هم رو به تو میبخشم حرف مرد تاجر زن رو به تمان داخت و قبول کرد و رفت و بعد به پسر بزرگش گفت پسر جون تو باید سعی کنی خود این مر رو به خونه بیاری تا همین همینجا تخم بذاره بعد هم با هیجان ادامه داد اگه این مر رو به خونه بیاری زندگیمون از این رو به اون رو میشه تازم مرد تاجر قول داده اگه اون مر رو بهش بدیم منو و بقیه حرفشو خورد و سکوت کرد سر خارکن قبول کرد و به صحرا رفت و خوب اطراف رو جستجو کرد و بالاخره مر رو پیدا کرد و به خونه بود زنم فورا مر رو گرفت و برد داد به مرد تاجر و گفت اینم مری که میخواستی حالا باید به قولت عمل کنی و... تاجر گفت نه نه نه نه صبر کن عجله کار شیطونه باید باید با این مرغ یه غذای خوشمزه برام درست کنی و بعد این غذا رو بیاری بعد هم من به قولی که دادم عمل می میکنم زن با تعجب گفت ولی اگه این مرغ رو بکشیم که دیگه از تخم مرغ خبری نیست مرد مرد تاجر گفت میدونم تو فقط چیزی رو که بهت میگم انجام بده کاری نداشته باش به بعد تحکید کنن اضافه کرد راستی یادت باشه از اون غذایی که درست کردی نباید کسی جز من بخوره وگرنه من همه چیز خراب میشه زن با تعجب پرسید چرا؟ یعنی تو میخوای یه مرغ درستتر رو خود تنهایی بخوری؟ پس پسرم که این هم زحمت کشیده و اون مرغ رو پیدا کرده چی؟ مرد تاجر گفت آها من حکمتی در این کار میدونم که تو نمیدونی زن. و زن به ناچار قبول کرد و رفت تا با مرغ غذای خوشمزه برای مرد تاجر درست کنه بیاره. و ما حالا بشنوید از پسرهای زن بله زن به سفارش مرد تاجر از یک قزای خوشمزه با اون مرغ بار گذاشت و چون خسته بود رفت یه چرت بزنه و بعد غذا رو برای تاجر ببره در این موقع پسرها که بیرون از خونه بودن به خونه برگشتن و دیدن بله مادرشون یک قزای خوشمزه ای بار گذاشته که عطرش تمام خونه رو برداشته چون خیلی هم گرسنه بودن طاقت نمیوردن و سر و گردن و سنگون و مر رو خوردن و به خیال خودشون بقیه رو هم برای مادرشون گذاشتن و دوباره از خونه بیرون رفتند چند دقیقه بعد زن بلند شد و رفت سراغ قضا و بیخبر خبر از اینکه پسراش قسمتی از مرغ رو خوردن قضا رو برای مرد تاجر برد و گفت بفرما. اینم یک قضای خوشمزه که با مرد درست شده بفر بفر نوش جونه مرد تاجر سر قابلمهی غذا رو که برداشت بویی کشید و گفت به به چه عطر و رنگی داره زن از وقتی که زنم از دنیا رفته یه همچن بوی غذایی به مشامم نخورده بود زن گفت حالا کجاش رو دیدی مرد؟ من چنان هنرهایی دارم که... هنوز حرف زن تموم نشده بود که فریاد مرد تاجر بلند شد. پس سر و گردن و این مرکو ها؟ کی اونر خرد زن؟ زن با تحجب گفت... چی؟ من... من گست به این نزدم اونو کامل کامل بار گذاشتم. لبود... لبود... بعد سکوت کرد. مرد تاجر دنباله یه حرف زن رو گرفت و گفت لابد کار اون پسرای شکموی تو زن با شرمندگی پرسید خب حالا باید چی کار کنیم؟ مرد فکری کرد و جواب داد باید باید به پسرات آش خیلی شور بدی زن با تعجب گفت آش شور؟ که چی بشه؟ مرد گفت که اونا سر و گردن و سنگدون مر رو که خوردن بالا بیارن زن با تجب پرسید آخه چرا حالا اون بیچارهای کمی از این مر خوردن آسمون که به زمین نیمده تاجر سری تکون داد و در جواب چیزی به زن گفت که شنیدنش حتما برای شمام جالبه حالا چی گفت؟ بله چند از سب کنید تو براتون بگم. مرد تاجر در جواب اینکه خوب خب حالا پسراش پی مقداری از مور رو خوردن مگه چی شده؟ گفت ای زن ببین چی میگم هر کس سر و گردن این مور رو خورده باشه پادشاه میشه و کسی که سنگدونش رو خورده باشه هر شب زیر سرش یکی سه اشرفی ظاهر میشه زن با شنیدن این حرف با هیجان و ناباوری گفت <تصفيق> یعنی یعنی یک پسر من پادشاه میشه و یه پسرم هر شب بعد از شدت حیجان از حوش رفت بعد از بهوش اومدن زن تاجر گفت تو نباید در این بار چیزی به پسرات بگی و گرنه یعنی تو رو به همسری خودم در نمیارم و زن هم به تاجر قول داد و گفت که در این بار چیزی به پسراش نمیگه و بعد به خونش رفت ولی پسراش خونه نبود. حالا ببینیم پسرها کجا رفته بودن؟ پسرها همینجور که داشتن میرفتن تو بین راه به یه دراهی رسیدن و هر کدوم از اونا بعد از خداحافظی از یه راه رفتن پسری که سر و گردن مر رو خورده بود به جایی رسید که دید مردم جمع شدن و دارن باز شاهی رو پرواز میدن تا پادشاه سرزمینشون رو انتخاب کنن چون مدتی بود پادشاهشون از دنیا رفته بود و جانشینی نداشت پسر که در میون جمع بود یه دفعه باز شاهی یه راست اومد و از خوشانسی پسر افساری ما نشست روی شونه اون و مردم اون رو به عنوان پادشاه سرزمینشون پذیرفتند اما بشنوید از سروشت پسری که سنگدون مرغ رو خورده بود اونم رفت و رفت تا به جایی رسید که چهارت دیوه سفید نشسته بودن و در کنارشون یه سفره یه تیردون، یه کمان و یه شبکلاه قرار داشت دیوا با دیدن پسر خوشحال شدن ولی پسر ترسید و خواست فرار کنه که یکی از دیوا گفت ساب کن اگه میخوای زنده بمونی؟ باید این اشیا رو بین ما عادلانه تقسیم کنی هر کدوم از اینا ارزش خاصی داره پسر پسر که ترسش ریخته بود پرسید چه ارزش خاصی دیوا جواب دادن این سفره قلمکار رو هر وقت که باز کنیم هر قزایی رو که بخواییم در اون هست این تیر و کمونها هم هر جا که صاحبش بگه پرتاب میشه و اگه به کسی اصابت کنه هرچی بخواد همون میشه پسر با تعجب پرسید خاصیت و ارزش این شبکلا چیه؟ اون چیکار کار میکنه؟ دیوها گفتن آ این شبکلا خاصیتش اینه که هر کسی اونو به سرش بذاره از دید ها پنهون میشه پسر؟ سرهی تکون داد و با خودش گفت آه این دیوا عجب چیزهایی با ارزشی دارن باید هر طوری شده اونا رو از چنگ دیوها در دیوها که منتظر قضاوت پسر بودن گفتن پس چی شد داری با خودت چی زمزمه می کنی پسر پسر بتوندی گفت هیچی چی هیچی, هیچی. م... دارم فکر می که چجوری میشه؟ ادالت رو بین شما ها برقرار کرد بعد فکری کرد و گفت آها این بهترین کاره من من چهار تا تیر به جهت های مختلف می‌ندازم و شماها به دنبال اونها میرین و هر کدوم که تیر اول رو آورد سفره قلمکار مال اونه هر کسی تیر دوم رو آورد شکلاه مال اون میشه هر کسی تیر سوم رو آورد تیردون رو صاحب میشه و بالاخره هر کدوم از شما که تیر چهارم رو آورد کمان رو میبره قبوله دیوا کمی فکر کردن و پیشنهاد پسر رو قبول کردند و پسر بعد از رفتن دیوها به طرف تیرها تمام اشیار رو برداشت و از اونجا دوشت بله پسر دوم افسانه ما اشیاء با دیو دیوها رو برداشت و رفت و رفت تا به سرزمینی رسید که جای مناسبی برای زندگی بود همونجا ساکن شد و چون هر شب کیسه ی اشرفی زیر سرش پیدا میشد، شد به زودی ثروت زیادی به دست آورد و زندگی اون در سطح زندگی پادشاه اون سرزمین دروند دختر پادشاه که خیلی زیرک و باهوش بود فهمید که هیچ کسی نمیتونه در عرض مدت کوتاهی این همه ثروت به دست بیره به همین خاطر به پسر نزدیک شد و اعتماد اونو به خودش جلب کرد و پسر هم از روی سادگی و اعتمادی که به دختر پادشاه پیدا کرده بود تمام ماجرای زندگیش رو برای اون بازو کرد دختر با حیلگری یه آش شوری پخت و به خرد پسر داد و از این طریق سنگدون مرغ سعادت رو صاحب شد. بیچار پسر جوان افسانه ما از اون روز به بعد فقیر و فقیر شد. اما نه. اون هنوز اشیاء با ارزشی رو که از دیوهای سفید برده بود از دست نداده بود. بله. پسر در صدد انتقام از دختر پادشاه براند. فورا تغییر قیافه داد و اشیای با ارزش رو برداشت و به در قصر پادشاه ره. کنیز دختر پادشاه از دیدن قلم قلمکار که پسر با خودش آورده بود خوشحال شد و رفت خبر این صفری زیبا رو به دختر پادشاه داد. دختر که بسیار کار بود خواست سفره رو از شنگ پسر در بیاره. ولی پسر گفت شاهزاده خانم. این که چیز با ارزشی نیست. من تیر و کمونی دارم که قدرت عجیب و خارولادهی داره. به بعد شاهزاد خانوم تمکار رو با تبری به سرزمین دور پرتاب کرد. اما این تمام ماجرا نیست. اگه یادتون باشه براتون گفته بودم که خاصیت این تیر و کمون این بود که اگه به کسی اصابت کنه هرچی که صاحبش بخواد همون میشه. خب، حالا به پسر چجوری از دختر طمعکار پادشاه انتقام گرفت؟ پسر با استفاده از تیر سهرامیز دختر کار رو به شکل علاق سیاهی درآورد و از اون برای بارکشی استفاده کرد. روزها گذشت تا اینکه پسر و علاقش که همون دختر تمعکار پادشاه بود به سرزمینی رفتن که پادشاه اون سرزمین خیلی عادل بود و با مادرش زندگی میکرد این پادشاه در دروازه قصرش زنجیری آویزون کرده بود که هر کسی که مظلوم واقع میشد اون رو به صدا در می آورد و از این طریق پادشاه رو از ظلم و بیداد باخبر میکرد دختر وقتی متوجه این موضوع شد فورا رفت و زنجیر رو به صدا در آورد. وزیر با شنیدن صدای زنجیر از قصر بیرون اومد و دید که اولاغی اونجاست. نزید تر رفت و دید که الاق از فرط بارکشی زخمی شده. فورا اون رو به داخل قصر برد و به دستور پادشاه صاحب اولاغ یعنی پسر افسانه ما رو هم به قصر آورده. و اینجا بود، که دوتا برادر همدیگر رو پیدا کردن پادشاه اون سرزمین کسی جز برادر اون یعنی برادر خارکنش نبود پادشاه عادل وقتی ماجرا رو فهمید از برادرش خواست تا از گناه دختر بگذره و اونو از غالب الاق بیرون بیاره برادر هم همین کار رو انجام داد و بعد جشن با شکوهی برپا شد جشن چی؟ میگم جشن عروسی پسر و دختر پادشاه و برادر بزرگتر هم در کنار مادرش سالهای سال به حکومت عادلانهش ادامه داد افسانه ای ایرانی مرغ سعادت رو براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب قصه‌ها و باورها تعلیف دکتر احمد بیانی. افسانه‌ها روایت گذشته هایی هستند که نشان از آینده دارند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح پور ویراستار سید فریبرز نور بخش اجرا مهران دوستی صدابردار بردار ابوالفضل پیرامی عیع کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرود